اول بلله بسم الله الرحمن الرحیم والحمد <سؤال> لله رب الالمین الله علیه سید الله و آله الداخلی در بحث قیلت مرحوم شیخ قیبر بعد از تعرض روایات امور رو با عنوان بقیه کلامی امور ترجم از این منحج مرحوم شیخ حضرت الله نفسه این عنوان نباحثی و مسحق یادن که تقریبا خلاصی اون ده سال و مناقشات مرحوم اصلاد رو ما در همین تفاقه مثال فقاطه یکه مرحوم استاد نمیشن در این تیم مراجعه آن سر باشه راحت تر باشه از اونجا نهر با یک نوع به اصطلاح توضیح اجمالی و یک حالا به مقداری نقادی اجمالی بشی مرحوم شخ بانون امور قرار زن که اولش عذرهی و تو در این مسترن یه خطابه. معروف بین علمای لغت نوشتن اختار و یختار و اختیابا اسم اسمو علیه اس در اینجا اصطلاحاً اسم مستر بارده و اسم مستر البته قیبت رو اسم مستر باب اما من توضیحاتشون سابقاً گفتم چند بار صحبت کردم چون وقتی فرصت این بحث نیست از خرد نواجه به و اسم مستر و حتی در زبان فارسی و اهلویات فارسی حاصل مستر هم اضافه کردن به نظر دکتر تردیز ناطل خاندر هست کتابی در مستر اسم مستر حاصل مستر سابه امزانه کتاب کرده کتاب که خیلی مفصل است، خوب نوشه چون در فارسی هم این مطلب هست الا این که در فارسی زابط منتره چون با پس ورد و پیشنگیان کاری اوقات فارسی زابط منتره تو عربی که با حیاتون از کرده معانی مختلف در لغات مختلفه در بعض از لغات با حیات مثل عربی در بعض از لغات با پسند و پیشنگه مثل فارسی مثلا گفتن گفت گفت او یا گفته و گفتا الافلام رو حد فرها رو بعضی علامت اسم هست اگر سن بعضی علامت حاصل است تقریبا توی زمان عربی واضحتره. تره مثلا گفتار و کردار و شنیدار و الاخره فارسی میگم واضحی بحثی میخوام اینجا بشیم ما تونجهی که من خودم بیدهانی دارم جایی دیگه باشه قدیمترین مستری که تعبیر اسم و به رو کار در کتاب سیوهه من قبل از اون نیدم شده و که در کتاب سیره اسم مستر یه معنی اصطلاحی نیست این نوستان مقیام که از دوله بر مستر این مورد از اسم مستر در کتاب سیره این نیست اما به عنوان این که فرقی بکنه و خارلش هم چیه تا که من دیدم بانون تصریح به خارل در کلمات ابن مالیتیه چون تو علفی هم داره ولی اسم مستر رحمت در اونجا در شرح تحصیلش تازه که چه،, چه تازه چه پنجه سال, سال چپ شده فرق این دوتا رو لقظی میگذاره حالا من گازون اون بحث فرقه به اسم مستر بشه. و عمده فرقش رو این میگذاره که اسم حروفش از مستر کمتره مثلا ارتیاب با قیبت قیبت حروفش کمتره چون قیبت در حروفیه به اصطلاح های آخرش اضافه داره به خلاف افتیاب که حل دوساهف اضافه داره و تا حروف اسم مسر کمیتره اون پیبت رو یعنی اون کلام نه قی بروی بر خودش ممسر قابللی یعنی اون میی اون مسله تمام افتیاب مسله و به اصطلاح مسئله قیبت است و نستره. حالا این مطلب اصلا درسته درست نیست چیزی واسه بشه اون چندی طول میکشه نمید موقعی قیبت بشه فراد اشارات از این کن مرحوم خویی در اینجا این بحث رو مطرح نکرده شیخ مطرح نکرده اما در کتب لغت این بحث آمده حالا در کتب لغت یا کتبی که شبیه کتب لغته که باید عرض میکنن در خلال بیشون از سه متعرضین بحث نشدن مرحومی شیخ داره از قیبت و اسم و مستره. این در کتوب لغت آمده ازده از کتوب لغت که بعضیش اینجا نهاره شده پس این غیبت به فت مستره برای قابل اقیبو و غیبت به کس اسم و مستره برای باب افتعال حروفش هم به اصطلاح معروف از حروفه چون فرق به نقیب از بقیبت بز همین اون مستری اگه این دومی همه اسم مستر همون باشه حروفش اندازه میشه نه اسم مستره برای اونه. اسم مستره هست برای اقتیاب اقتیاب مسترشه این اسم هست. مثل کلمه به احسان ما هم توی بحث لازرر یک مناسبه از که زرر غیر از زرر و زرر زور یا زر یا زرر این مسیره. اما زرر مفکوکنده جدا بشه. از هم جدا بشه این اسم مسیره و اسم مستره باب تفاوت. برای زرر و یا زور و زرر، نسل اما تزرر یا تزرر یا ضررن اسم مسیر تفاوت. این دو با هم دیگه هست. زرر قیل از زرره و در اونجا هم یک توضیحاتی یا اگه در دوره سابقه ارز باز پیش بیاد اونجا هم ارز میکنیم بعد در محل خودش تو بست ارسول اینشالله الان این نکاته لحوییست که باید روش حساب بشیم البته این مطلب که قیقت اسم مستره این خیلی روشن روشن نیست قطعی قطعی نیست الان در کتب لغت و از کتب لغت هم سرارت که در کتب قرما مثل همین مکاسه مهمون شیر همین کتاب مهمون استاد که غیبت رو اسم مستر باب اختهابه گرفتن اختیام مسترش اختیام گرفت، این دو اسم مستر گرفت، مثل اینکه قوس رو اسم مستر اختتره گرفتن خود لقدر بکنه حالا چه زواهر لغت کتب لغت بسر یک سلو قسلن و قسلن قسلن استعمال شده تمام بناه شده که قسل رو قسل و قسل رو قسلن نگیرن قسل و یک قسلن نگیرن نمون حالا یه مقدار روشن میشه نظرم بردار توضیح میدم شد میمخواستیم بارد بسر مستر و سر مستر بشه الان که ماکان در ادهی از کتب لغت این عنوان اسم آمده من جولاقه در همین کتاب داره در کتاب اصفهان منی اقتابه خود دخلو كنه الا ذاكر هو به ما يكره من الويوب وهو حقا للاسماء الليده اینجا مراد این در اسم اسم سنستر اسم مستر البته در كتب لغت در کتاب نه بحث به مناسبتی که در کتاب حلیفی نهاج مالک در بحث عمل مستر اسم مستر اونجا داره یه مقدار اونجا فرقی این تا که خود اسم مستر هم مثل مستر عمل میکنه که مثال معروفی روی که در کتب خلصان آدم هست حدیث عایشه فی را قبله را اسم مستر گرفتن که موقع فارسی گوزه میگی مسترش را تدبیر گرفتن قبلهو یا قبل قبلهو قبله تقریب این مصدرش تقریب قبله اسم مصدره که حروفش کمتر از اونه که این یابطه اگه درست باشه درست باشه مواضح نیست الان یه حاله که قبله تر رجل او به نفس امرعته به مفهول قبله فایل ها گریزان بفایل شد اسم مصدر الوزو اینم شاید گرسم بر اینکه که اسم مصدرم اما عمل مصدر رو میکنه در هر حال راجبی این کلمه که آیا این اسم استر یا اون وقت مرحوم استاد متاسفانه کلام دیگری هست این رو نقل نکردن شاید توجه نفهموندن که من شهر از سر اضافه کنم این در صفحه 325 نهار کردن در صفحه 327 عبارتی رو از ابنالعرامی از کتاب به اصطلاح العرب نهار کردن که از بزرگان عرب بزرگان غزرگان و من دو آخه دارم نوشتن بشتن ابن العربی گفته غاب ادازت کرده انسانا به او اوشه من دیروز هم در بحث گذشته اشاره به این تفسیر ابن العربی کردم و از کردم این یک تحتمه داره متاسفانه استاد تحتمه شنر نفر بودن احتمال داره ایشون از کردن مثلا جواهر یک دیدن مرموم استاد خودشون به کتاب لسان عرب مراجعه نفره اون نقطه داره اون حبارت ابن عربی داره بعد میگه غابه لازه کرده انسانن به خیر نوشه و غیبه کفعله سوا زش و سفت او از که سفت هنده رو اسم مستر نگرفته فعله گرفته حیعت به اصلاح خورشون مست بره مثل جلست و جلست و خرمی اینشون این که غیبت روشن خود این همه این بحث عددی حالا شما من رو مستاد ناقص نهارو کردن من کامل و ایشون اصلا کلن تو برازه بحث عددی ها دیگران نشدن برکه این بحث ادبی داره معلوم میشه قدبای خدین مثل ابن عراقی اسم مصدر اسم مثلا ندوشه من نی ایام قبل سیده کسی اسم مصدر یعنی لفظ اسم مستر نه اصطلاح اسم مصدر در کتب سیده دیدن جای دیگه ندیدن الا يا قابل اندازه کرے انسان به اوشر و لخی به فعلتا او فعل رو مصدر هیئت میگه نوع میگه که حیات فعل مثل جرب درص جرب العبی مثلا نشستن اعرض نشسته یا مثلا شبیه اون این غیضه رو اونجور تلفظ کرد یعنی حیاتی رو گرفتن که انسان شخصی رو به خیر یا شر نام ببره قبیح حسن کاند عفر صحیح به حسن که قبیح حسن فراهم نکرد قبیح طه تو گفته حالا به هر حال شاید مراد ابن فعل گفته مرادش همی اسم مستر به شو متعارف ندوده نبفته به هر حال در کتب لغتی که بعدها داریم که دیگر اصلا این اصطلاح مستر به اسم مستر جا افتاده بود قیبت مستر غیبه اسم مستره و مسترش هم اختیابه نخابه. شاید از عباعت ابنه عربی درست که اون هم باز برمیگره به ما به از عباعت ابنه عربی اینطور مروم میشه لیکن از فعلا در کلمات این بیشتر جا افتاده بریدم نیست یعنی این مطلب که واقعا ریبت غیر از قیبت باشه قیبت نبودن شخصه پنهان بودنشه قیبت کلامی سیدر پنهانی این واقعا با هم دیگه در جهت هر بکنن ارس هم شاید دلاز بر بعد ایشون آقای و غیر خلافی تعید مفهوم غیرازه را حقیقتا بعد نوشتند که مرمین خاصه عام عامه روایات آوردهن رو قیمت ذکر الانسان به ما یک راه و, هو و هو حق و بعد ایشون نوشتند که مرحوم مصنف مود شیخ انصاری گفتن اجماع بر این مطلب ذکر الانسان البته ایشون که انسان داره اما در حالت طرف ارخابی روایت اون نه اخذ بلکه نهاده تحریف لایم جهلا معنان محسل شو میفرمانه این تحریف معنان محسل نداره؟ فه این المراد من المعصولفی موصول مرادشون ما یک راه. این کان خب از ذکر به ذکر یک ره مثلا این ذکر رو کراحت داشته باشه حالا این هم خیلی عجیبه که ایشون کلمه ذکر رو علای موصول لو اشاره به ذهن ما ممكن اشاره به صفت باشه چرا به ذهن باشه خیلی عجیبه نگفت چی جان چون مناردو تهرکردم فعلا عبارات ایشان می خونیم با مناقشات مختصر اما اصل مناقشه با توضیح کلی بحثو میذاریم ان شاء الله بعد از کلاماتیشه این چه موضوع برگرد به ذهن من کلی بحث اور به صفات میری که به این چیزی که اونو من ذکر و به ذکر لای ارزابیه اون ذکر و سمن در تعریف مالیسه لیسه به غیبت پتن لازمش اینه دیگه چون مثلا ممکنه تن روح زکر یعنی نماز حاضر نیست کسی اینه ذکر و ایشون ذکر رو به معنی مصول به معنی ذکر و نماز ممکن نه خب ممکنه به معنی صفت باشت خود فعل باشه خوشیشن میگه بگیش کسی بگیه فعل نماز شبشون نه بکن نمی نصفت لازن به فعل نماس چند خوشش نداره شون لیسه به غیبت این اضاکر حل مقروفی کرده که بگید به فعل بعض مباهان بلکه مستحبات این لازم میاد بود چه این اطلابی ایشان خیلی دعیبه یعنی که بگیم کسی خوشش نمیاد بعضی مستحبات رو حتی در حداش بگم و معذاره کله گفتن او که راضی نیست این قیبت نیست قطعا چی گفت قفرم نیست؟ چه مشکل ده؟ چون واقعا خب بعضی افراد که حاضر نیستن بعضی اصطفات خوب اونها گفته بشه چون رو در معرض خطر قرار میده مشکل را در واقعا راضی نیست نه این کار ظاهرم باشه راضی نیست مطلی راجی به او گفته بشه بعضی نمیشن افراد در طالب خو یک یک سری انجام بدادم مثلا دعای خود بار طرف رفته و شد و دوباره شروع خونش بود و بعد بعد به حالت تا به شناخت خدا برنده دید شروع به شناخت شد خب بعضی نمیاد یالا این این که آیه خلیفه‌تن قطعاً بی نیست به غیر از قطعاً حتی ایشا هیچ مشکلی هست هو می‌گه بی بحثه یا هوش این بی نیست اما تعبود شرعی یا لاغل احتیاط وجوبی حاضر نیست طرف مثلا جندماد شد و خواهد هرچون شخصیت خصوصی داره اگر بگم در جرسرهایی درستیم کنه مشکل درستیم چی اشرا داره این ریبه خیزت بیشتر دربویی خی... های... نه سلم نه من قبول کردم بگیم عرف اما این تعبودی باشه اصلاح کلام رسول الله حالا اون بحثیت یک درد ارز میکنم زن بگیم؟ این در خر زندگی نه این که قطعاً بی بحثه این کافیه از جون شو؟ قطعاً بی نیست قطعاً نمی‌شه بی بحث نیست واقعاً من اصلا خیلی به شدت اعتراض می‌کنم باز از نکات پیدا گفته بشه چون مهندسشون در درس صد درصد می‌خونم مشتاق درس ما حاضر نیستم بگم خب اون وانگهریم ایشون بگه اون ایزان مقدمه داره حالا ممکن دیگه بگم اون دی حدیث چون ما از خب یک و از فرکشون از بحث از اون راه نشدن ما از خب چون کلمه یقترب هم با همین حیث باب افتحان همه بعد چون در توضیحات از خبیه ها این چون در خود قرآن آمده در لسان دری آمده ولای یقترب برزکن برزکن تو لسان دری آمده دیگه چون تو خود قرآن آمده و تو لسان دری آمده دقیق نکنه هم بنای فوقهای اینه که پلپازی و موضوعاتی که در رسانده ازمه هم میشه در مانی ارفی عادتاً این طوره پس باید افتیاب با همین عنوان افتیاب داره یک مفهوم ارفی باشه طبیعتش این طوره میگه مرم مصول از این راه بارد نشه. ما این طوره از میده ما را یه باید میشه بینه باید ببینیم چی از نظر ارفی افتیابه و شاره چی تصرف کرده ک راه رسمیش اینه چون در لسانه در این وارد شد های مبارک و لایختب برد. پس این معنیش که لایختب مفهوم و ارفی داره این ارفان به فهم میگه از جایی دیگه اتا پیمه همه اگه به مایه فرحول و سبه احتمال میدیم در حد احتمال که اشکال نداره که شاله بگه نه درست و در درخی و چراحت رو به معنی صفات زش میتونه این درسته لکن من میخوام بگم که شما اگر چیدیده پشتر که چیزید اینه برای خوشش نیاد برای خوب باشه اینم در اگر بی این هم کار خوبی نیست این هم یک نوع ایزا هست اینم یک نوع خوردن گوشت نه مثلا هست او از در خطر میبینه اگر این صفت خوب هم از نقد باشه شخصیتش در خطر به هر حال دقت بکنید این رویه کیشون ایشون بفرماید قطعاً داخل میشن تعریف چیزی که قطعا قیمت نیست بله و علیه تعریف المسکول تعریفون بدرم کما انه تعریف المصباح که مورد خریومی در المصباح المنیر ها و الازکره او به مایتره و منال قیوب اون مایترهو رو به قیوب زده آقای خوی فرخیان که یکره یکرهو رو به ذکر بدرد همین یکرهو نه ممکنه بگیم ایوب و یا حسنات فهم نکنیم خود لازم به ذکر باشیم یکونو تعریف بالاخرس. هم بالاخرست این پس اون ام میشه این اخرست میشه و و امکان بعد این اش... مطلب که ایشون تعریف به بعد این توضیح موجوده نازم بعد ایشون فهمه امکان المراد من الموصول تعریف التعریف على اوصاف المذنومه و لعفعال قبیه هست من المخولفی و به تعریف متقدم من المصوا من اینطورم به قرائن اثن هفتون شون این چه رو سیبروات پیغان برده علاوی انداره شد مثلا ها يقربه من بزخوندن و يقربه از تعریف متقدم من خب بقریم داشته و يقربه از تعریف متقدم من المصوا خراج انقطا و قوناه و وایی میو خرده بوو شو خیلی فنی نباشه اولا من توضیح دادم ما کتاب های اسلام مثل مسباح شو مسباح بیشتر شرح الفاظ کتاب بسیار رافی وارد شده شرح کبیر چه متن صحیحه البته اصل کتاب اون جد بوده در مقدمه اش و سعی کرده به رو تفسیر لغوی ایزن. یعنی دنبال اصطلاح نبوده لیکن به طور طبیعی کتاب مسوا یک است که در جمع فقهی تفسیر کلام میده سعی میکنه میگه تل اصل اگه گفت اصل لغت و بعض از لغاتی هم بیاره که در کتاب نبوده که کتاب همه شایده فقهی باشه نیست اما جمع عمومی کتاب فقهیست این یک مدلن و غالبا اینجور چیزهایی که جبه اومیش بتهه فتوای اون فقیل کرده شغلی میکنه. این یعنی در حقیقت اینکه که این انکان المرادن الموصول پلا این در حقیقت اون فقیل شافعی اون عبارت پیغمبر رو اینجور فهمیده این لغت نیزای خوش دارد من لغت ناسم انتر کرایت اخاک به ما فیلم ما یکره رهو رو سنن همسای که به ذهنیشون رسید دقیق بکنید مراد اون آقا بعد مراد مقلدیشون سا کدار مثباه مراد این کلمه ما یکره رهو اطلاق نداره ما یکره و من منال غیوب نمطلقه هم یعنی طبیعتم اموری که طبیعتا انسان برشیده خود دفتر اموری که انسان طبیعتاً خوشش شنید این طبیعت دفتر پس این یک رو شخصی نگرفته به این نقطه ما یعنی صفات، یک به بقیرن یک رحوو یعنی که در نظر اوغلا مخلوه مضمونه پس میشه اویون دفتر باید ایشون با اصلاح پس در حقیقت مثباه المنیر اخزن از اون مشهدی که مقلب حدیث رو اینجور معنا کرده و این که بیاریم بگیم تعریف مثب تعریف اون آقا اینا با هم دیگه مثلا اون خسون این اخسون نه این نیست این فهم حدیثه من توضیحاتش سابرندادم فقط الان اشاره آوره عرض میکنم یکی از مشکلات لغت عربی که هلان باش رو هستیم حتی در مقهوده نه بشن به خود لغت اینه که اصولا لغت عرب از قرن دوم تدیل تن... شد نیمه های اول قرن دوم و تقریبا تا اواخر قرن دوم دیگه به اوج خودش رسید خود سی به به معروف 180 رفاتش از سال 130 و 140 به به آیان بغین برده مورد از بلده کوفه و بصره را وصلت در تدوین لغت و مراجعه میکنن به عرب. خود سیریل زدرسن میفته عربی بكونه که چه من دیوال کتاب واشام میدونه نر میکنه حتی چرا نعر بكونه 1050 چه 1050 باشم مجلوریه احتمال داره شده ساختگی باشه. به هر حال فرضیه اینه که این که لغت عرب متاسفانه تدوینش از قرن دومه و متاسفانه در محیط اسلامی تدوین شد به قدر نه عرب عرب کرد که دیم نداشته باشید و متاسفانه هم در یک منطقه محدود در ایران بود در واقع خب بعد که آمدن توضیح داد. رفتن این طرف اون طرف به جایس در این کتاب خصائص مجنی جنی می‌دونم موصله شما شمال عراق بود. می‌گوشید موصله که خودش در زمان خودش که 300 شده یک نفری رو پیدا کرد که عربی اصیل مونده بنویسه از میگه کن تعبول و ما بتا و فی اوه خصائص جنی میگه هی از اون می‌کنه میکنه اینکه زبان عربی به اصطلاح خب بوده این مطلب رو می‌خوام بگم همون ما به نظر میاد ولی یه مشکل کلی ما در لغت عرب داریم تدوینش در محیط اسلامی شده و قطعا محیط اسلامی به قرآن و سنت متأثر بود یعنی اون اصطلاح دینی در ذهنشون جا داشت. لذا چون در این حدیب مطلب هست احادیث مکرر دارن سنگان دارن که خوندین از خود پیرن برای تدوین ملغی به هل نا مثلا لا یا رسول الله فقال. لذا اینا وقتی که آمدن تضیمین لغت کردن به اون حدیث رسول الله قیمت و معنا کردن خوب روشن شد الان ارز کردیم از اینکه که در قرآن آمده باید معنی لغوی داشته باشه نه معنی استودایی نه معنی که پیغمبر درستن یه قرد لذا این و لذا اون تفسیر ابن عربی رو ابن عربی رو دیروز ارز کردن تفصیل نهرابی اگر درست باشه فقط من شبهه دارم در صحت نقل و اگر اشتباه نکرده بود. چون ایشون قادر هستن به این معنی نه احتابه چون الان تو ذهنیت ما قاب لازم قاب زیدن اما در این ذهنیت قاب زیدن چون داره قاب ازا زکر انسانم به خیر اوشه کوی که بعد اووردن لا هم نهو نه اجنبی نیست از مقام توجه ندارن من هستان روزان الله ساله چیز در یه نکته هم این اون قدیمی هم در بکشی ابن عرابی میخواد بگه ابن خود قابل اینطور طور غیر از باب افتحاد از خود من هموز اسمی ما به صحت این در لسان عرب آمده من نگاه کردم مراجعه کردم خیلی اتمنان شخصی ندارم اگر راست باشه که نه عربی گفتی چون باید برگردم اینو از خجایشو نقل کرده معلوم میشه در به لغت کلامی است که انسان پشت سر کسی میگه خیرن او شردن مثل معنای لغتیش بوده نه اینکه استلاح اون وقتی بطر رویشون فعله گرفته حالا من نمیتونم فعله نه مستر به اصطلاح نو هیت مرادش اینه قیل بطور این معنام از کلم لغوی های بعدی ما اسم مستر اختابه گرسن او از خود غاوه گرفته نه اختابه او دقش میکنیم از کلم های خوبی بقیه نقل این کاجشون نقل کردن اشون بقیه خیلی هم مثلا مهم نیست اون زرافت ها همیشه توی اون قسمتی ممتنس یک کلمه خیلی کچیکی باشه داره زرافته بسیار زیادی باشه پس تا اینجا دکت بکنید ما الان اگر بخواییم دقیقه تر در زبان عربی کار بکنیم باید یک محیط واسعی رو در نظر بگیریم اصولا محیط کوفه و بسره خیلی جاگو نبود و تو خب بد نبوده چون مخصوصا بعد از تحسیز کوفه مقدار چون تا قبل از تحسیز کوفه جمعه های دو شهر شهر نبوده کوفه. که نبود نبودن کوفه اصولا که نبودن. به جایی کفه هیره بود در هیره چرا عرب ساکن بود؟ چون این منطقه تماما زیر نظر پادشاهان ایرانی بود ساسانی ها بودن خود پایتخت پایتر بودیه ساسانی ها فقط به ملوک هیره اجازه داده بودند که نام ملک به خود اجازه نمیزن بیم آه که اصراف مثلا شهر که اصراف بسترد عرب هایی که ساکن بودن عنوان پادشاه برای خودشون بگذارن تنها منطقهی که حد داشتن عرب ها در اون محدوده ای ایران محدوده قدید عنوان عرب عنوان ملتورشون به زهیر هست مثل نومان نمونزه ما هست این شرحی دارد و یه وقتی در توضیحات شرح کنم وقتی ریشه های این لغت عربی از اینجا نیست بیشتر از یمن یعنی. من باز عرب رو تقسیم بندی بکنم باز خود اون عرب هم قلحانی داشته بنی بنیترین معروف بوده که همزن وشالا انده محمد الرسول انده بود این لحنه عربی متعدد بوده مختلف بوده تا تدریجن که بعد از کردم یکی از که خیلی مهم بود همین تدوینه از بود همین قرآن بود قرآن عامل وحده لغت شد و یواشتباش اون لغات هاست الان در خود ایران آقای میترد یادشون باشه تا سده 50 سال قبل خیلی در دهات شهر و کوچه لحجه خاصی داشتن با انتشار رادیو و تلویزیون روزا می این لهجه‌ها کم میشه همه تقریباً به همون رادیو تلویزیون داره وابسته می‌کنه این عامل وحدت میشه خود قرآن کریم عامل وحدت میده خود تدوین لغت تدریجاً عامل وحدت میشه لذا اگر بخواید دقیقاً خیلی برای به لغت و قصر از و خسارتش الان استبا هم این مجموعه الهاصففهه حلقغه که یه واحد درسیست مت شد شده که 50 سال در دانشگاه های بیاتهل یه با درسی تو عوزای ما که نیست کهقدر روند میظاهر توجا تو حض دانشگاه بیاتهل در دانشگاه های داشتهن این الان واحد با شده که به حساب بررسی و تحریین ها با قول انزی و فرصفهه لغ شب در هر حال این که در کتاب مصباح باها آمده مس باهال شرح, شرح این و مفرداتی است که در کتاب عاشوره کدی رافی آمده که کتاب فقیز ترک کرده اش عاشوره تهیه چیزی دیگر ندارد کتاب رافی واقعا نشده شعره نه نمی شعره تهیه دکوپ دن نقدارو نگه داشتم این شعر کتاب دیگه تهیه رافی نم تو زن نم شافیه نزیش ولیکن در خودش در مقدمه نوشته لیکن تماماً هم فقهی نیست سعی کرده معانی لغویان در نظر بگیره چه الله تعالی اگر خدا توبید داد در اول عبارت مقاصل مرموم شیخ چون این عبارت مرموم شیخ از مصباح آورده و, و از آن بحث کردن به نظر من درست تو نفید توضیح بدم. به یه خیلی اصل مبادله و مالن به ما این اصل اینجا من این لغمیه معنی لغمیستن من اصطلاحی چون همین هم باید نسباب مونی روی یه آثاری برش باشد و بحثایی شده این شامده در اونجا اگر خداوند متعال توفیقی داده پس در حقیقت یک لغت در دنیای ما در دنیای عرب متاسفانه با رنگ و بوی اسلامی تدین شد خب بقیر چون این حدیث هم از یکنبر بود ان ترک اخات به ما یک رهول و سبب این منشاء شد که در تفسیر به ما یک رهو او ترک اخات ما به ما یک رهو ما یک رهو رو به معنای چراحت عمومی گرفتن و مراد از چراحت عمومی یعنی به انشالله خواهد آمد در لسان عرب داره خلف انسان مستور به سوئه او به ما یقوم و حول و من چون خواستم خیلی مختصر که اون که از بعد هم چون مرادشین اون رو دگیمون بعد دیگمون یه آشها چکر ببینی؟ ما لغت رو قول لغتی رو منبه به اما همی در مردیم که مثلا خوب این مردار کنیم خب یعنی همینی من گفتن من تا بگیم که در در من گفتن تو منبهی نه همین بگیم همین باز تمام نه ما میشه اما ارتقاط جامعه اسلامی نه لغت هر نه جامعه اسلامی هستم خود لغت, خود لغت رو خب وقتی میگه نیست دیگه شما نگیم خودش بی شما ما نمیشه, نمیشه با ما به ذهن رو میگه حق با نهرانی باشید در لغت مطلبه خیل و شد هر دوست اگر... ان یک کار انسان به خیل و شد. این دکتر اینه این بعد تصرفید که رسول الله برموده مثلا بدونی در این تحریفی دیگه یه خلف انسان مصدور این یه قیدی آمد انسان مصدور خواهد آمد در همین تنبیهات چون آرخوی کمتا تنبیهات هم دارن بله در تنبیه هشت صفحه 329 اشون می مشهور شد این باشه که با طرف قائب باشه بردیشون یه حقیقتی که اگر حاضرم باشه دیبست شخصیست نشسته استفاده برگزایی میخواد کسی بفرمه یه رو با خودش یهی آقای خودش بفرم فرمه میکنم تیشون هم راه هست بیبسته. خب آقای خودشون که نید چون آقا در لوقت گفت خلف انسان مستور خب وقتی گفت خلف انسان مستور این اگر مقابلش بود قیبت نیستی که خب نیام در ایشون تحلیل بکنن که آیا ایشون فرد من عبادیشون بکنم آخر دفته فرد درنیان مثلا حال مشهور منعنمال غیب ذکر که ما یک راولو سمه صدق و به من حضور مقتاب بل حالا و ظاهر منال آیه فین تشریح المقتاب بالمیته انما هو به ما قیل اما الان مادرکر تعریف الغید قیله فلا فرقه فی حضور مقتاب و مادام یستو قال القول انه اظهار لما ستر الله خودی خودی مقتضای اون تعریفه خب نباید تحلیل بکنن به قولشون مقتضی چرا چون مشهور که از کتب لغ... لغت هم اینو میگم اینو بگم کتاب‌های لغت هم در اینجا در حقیقت متاثر دو صحنه فقهی بودن فقهی روایات تعبدی چون قیقنبر فرمود به ما سنه به ما یک راهو لو سنه لو از این کلمه لو می کنیم حاضر نبوده ما زاخن بگیم که از خود ما چون ما پیوزه اشاره کرده ما یک ماده قید بدداریم یک حیعت داریم تنها محل کرا شدیم این حیعتش مستره یا مستر استالونو حیعته یک به سه یعدس سه خطا یخطا بده نیست به لحاظ ماده دو نوع غیبت در خیر در شرش باشه قابل درک اینی شخصش ثابت باشه که ایش خالص باشه یعنی نیستی نکته در نظر گرفته باشه پس این که ایشو دیگه طرز انسان منصور در آی خویش نه غیبت صدق میکنه ایشون و یعنی دوما فیلستان را به غیبی من از ترکل خلف انسان مستور به و به مایغم و مولو سمه بل و, و جمعی و, و اهل اللغه لکونی مقدار متعقن مفهوم اندر تعجب از ایشون بل نه دیگه در هم بشه این در صفحه 26 شد اون صفحه 30 ساره 29 بل یلتر این بحث من اینه که متاسفانه غیر از این آقای تضادی در کلماتشون هست متاسفانه تحلیل داده نشده یعنی ما نظرم اینه که اون تحلیل لغوی که ایشون رسید این هم در محیط دینی تفسیر شده یعنی ما باید خیلی در این مسئله دقت بکنیم که در مسئله غیبه این از یک مفهوم لغتی عمومی که حالا اونم از پیدا کرده یک مفهومی در کتب لغت آمده که چون کتب لغت و بردگرده به قرم دوبو و این معنیشه که در محیط اسلامی در محیط اسلامی چون از پیغمبر کلام نرده شده این خواهی نهایی در معنی بد اثر میکنه به ما یک رحمولو سنه این کلمه لوسنه اختضام میگونه که ماده هم ما معیل شده یه آبه در حقیقت دو نوعه قیبت مطرحه هم قیبت شخص و قلب ایسان مسئول هم قیبت اون صفت یعنی صفت نیست که پهانش شده، میخواد کسی خبردار نشه و مخصوصاً حالا ممکن در حصول و قبلی دقیقه نبوده مطمئن سی منبر نعقل شده این بعدی زبای روشن میشه اینجا